چشمحایش اثر بزرگ علوی با صدای آرمان سلطان‌زاده تهیه کننده دامون آذری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری انتشارات نگاه فصل اول بخش اول گویند مگو سعدی چندین سخن از عشق میگویم و بعد از من گویند به دوران ها. شهر تهران خفقان گرفته بود. هیچکس نفسش در نمی آمد. همه از هم می ترسیدند. خانواده ها از کسانشان می ترسیدند. بچه ها از معلمینشان. معلمین از فراش ها و فراش ها از سلمانی و دلاک. همه از خودشان می ترسیدند. از سایهشان باک داشتند همه جا در خانه در اداره در مسجد پشت ترازو در مدرسه و دانشگاه در حمام مأمورین آگاهی را دنبال خودشان میدانستند در سینما موقع نواختن سرود شاهنشاهی همه به دور وبر خودشان مینگریستند مبادا دیوانه یا از جان برنخی برنخیزد و موجب گرفتاری و دردسر همه را فراهم کند سکوت مرگ آسایی در سرتاسر سر کشور حکمفرما بود همه خود را راضی قلم داد می‌کردند. ها جز متعهد دیکتاتور چیزی نداشتن بنویسند. مردم تشنه خبر بودند و پنهانی دروخ های شاخدار پخش میکردن کی جرأت داشت علناً بگوید که فلان چیز بد است؟ مگر ممکن میشد که در کشور شاهنشاهی چیزی بد باشد؟ اندوه و بیحالی و بدگمانی و یعص مردم در بازار و خیابان هم به چش میزد مردم واهمه داشتن از اینکه در خیابانها دور و برشان را نگاه کنند. مبادا مورد سو زن قرار گیرند خیابان های شهر تهران را آفتاب سوزانی غیر قابل تحمل کرده بود معلوم نیست کی به شهرداری گفته بود که خیابان های فرنگ درخت ندارد تیشه و به دست گرفته و درخت های کهن را میانداختند کوچه های تنگ را خراب میکردند بنیان محله ها را برمیانداختند مردم را بی خانمان میکردند و سالها طول میکشید تا در این بر بره برهود خانه ساخته شود آنچه هم ساخته میشد تو سری خورده و بیقواره بود در سرتاسر سر کشور زندان میساختند و باز هم کفاف زندانیان را نمیداد هم شاگرد و مدرسه میگرفتند هم وزیر و وکیل. یکی را به اتهام اینکه در سلمانی از کاریکاتور روزنامهای در فرانسه درباره شاه گفتگو بو کرده بود میگرفتند یکی را به اتهام اینکه در ضمن مسافرت فرنگستان با نمایندگان یک دولت خارجی سر و سری داشته و دیگری را به اتهام اینکه سهام نفت جنوب را پنهانی از دولت به سرمایهداران انگلیسی فروخته است. در چنین اوضاعی در سال 1317 استاد ماکان درگذشت. استاد بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر بود. پس از چندان باز آثار یک مرد نقاش ایرانی در اروپا مشتری پیدا کرده بود و مجلات هنری اروپا و آمریکا پرده او را به چاپ می‌رساندند. از کسانی که روزی ورود او را در مدرسه و در مجالس با هلهل استقبال میکردند عدهای کمی جرأت داشتند که با او ابراز دلبستگی کنند. اشخاصی وجود داشتند که می‌دانستند استاد ماکان یکی از کسانی کمی بود که جرأت و دلیری به خرج داد و با دستگاه دیکتاتوری دست و پنجه نرم کرد. درباره او داستانها نقل میکردند میگفتن از هیچ محرومیتی نهراسید. به هیچ چیز دلبستگی نداشت. جز به نقاشی به هیچ چیز پایبند نبود. فشار دستگاه پلیس دیکتاتوری کمر او را خم نکرد. تهدید در وجود او کارگر نبود. مواجب او را قد کردن بی اعتنایی به خرج داد. از تهران تبعیدش کردند، سر حرف خود ایستاد و در قربت دور از کسان و دوستان درگذشت. اوامی می‌گفتند که عشق زنی او را از پادر آورد فهمیده فهمیده‌ها معتقد بودند که عشق به زندگی او را تا پای مرگشاند. روزی که خبر مرگ او در تهران منتشر شد، دوستان و نزدیکانش بی‌خ گوشی با هم صحبت میکردند. میگفتند یکی دیگه هم به سکته قلبی درگذشت چون معمولا ها معمولاً های حکومت را که در زندان و تبعید جام می‌دادند مبتلایان به چنین بیماری قلمداد میکردند. شاید به تحریک یکی از دوستانش که در دستگاه دولتی نفوذ داشت شاید هم به ابتکار خود حکومت که از نفوذ معنوی استاد در میان مردم فهمیده با خبر بود مقصص سرپوشی جنایتی که رخ داده بود از او تجلیل کردند و گفتند حالا که یکی از دشمنان سرسخت استبداد نابود شده، خوب است از مرگش حد اکثر استفاده بشود. مبادا پس از سر و صدایی که یک رئیس شهربانی فراری در دنیا راه انداخته بود، جهانیان یقین حاصل کنند که استاد را در ایران کشتند. در هر حال در مسجد سپه سالار ختم دولتی گذاشتند. جنازه‌اش را با تشریفات شایسته به تهران آوردن و در حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند. تا به این وسیله دولت خواست هنرپروری خود را نشان داده باشد اما مردم فریب نمیخوردند آنها ساختمان با شکوه دانشگاه را همچون به دستور دیکتاتور انجام گرفته بود به زیان استقلال کشور و به سود انگلیسها میدانستند چه برسد به اینکه مرگ استاد نقاش را آن هم در غربت و مراسم سوگواری او را با چنین تشریفات و تجلیلات ساختگی عادی و طبیعی تلقی كنند آنهایی که در تهران خفقان گرفته آن روز سردمدار و کیابیا بودند وکیلان و وزیران و سرتیپ ها و سلاشگر ها و هوچی ها روز افتتای نمایشگاه آمدند و دیدند و به گفتند و رفتند. نمایشگاه قرار بود یک ماه دایر باشد. روزهای اول فقط شاگردان و دوستان و هواخواهانش به تماشا میرفتند و مدتی جلوی پرده او به خصوص در برابر آخرین پرده نقاشی او که از کلاد به تهران آورده بودند می ایستادند و به عظمت هنر و قدرت تجسم و نیروی بیان عواطف انسانی به وسیله رنگ و خط سر احترام فرو میآوردند. بعد از ظهر وزارت فرهنگ برای حفظ آبرو و حیثیت زمامداران شاگردان مدرسه را دست دسته بهدانجا میفرستاند اما از هفته دوم تماشای آثار استاد نقاش جنبه عمومی و ملی به خود گرفت. گروه گروه مردم می‌رفتند که خودشان را تماشا کنند در پرده‌های خوش رنگ و با صلابت او تصویر خودشان را می آفتن. و به خصوص در برابر پرده نقاشی که زیر آن به خط خود استاد چشم هایش نوشته شده بود می و خیره به آن مینهکرستند. با هم جر و بحث میکردند و میکوشیدن راز چشمهایی را که همه چیز می و در عین حال آرام به همه نگاه میکرد دریابند. مردم از خود میپرسیدند که این چشمها چه سری را پنهان می کند چه چیز را جلوگر میزند؟ و هرکس هر چه فهمیده بود میگفت؟ اما نظرها متفاوت بود و به همین جهت جر رو بحث در می میگرفت. در اواخر هفته از ازدحام به حدی شورنگیز شد که دولت و دستگاه شهربانی تماشای تابلوهای نقاشی را نمایش دست جمعی مردم ناراضی به زیان حکومت تلقی کردند و در نخستین روزهای هفته سوم نمایشگاه را تعطیل کردند. پرده چشمهایش صورت ساده زنی بیش نبود. صورت کشیده زنی که زلفهایش مانند قیر مذاب روی شانه‌ها چاری بود. همه چیز این صورت مَحف می‌نمود. بینی و دهن فگونه و, و پیشانی با رنگ تیرهای ای نمایان شده بود گویی نقاش میخواست اس بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم خارج وجود ندارد و فقط چشم ها در خاطر او اثری ماندنی گذاشتند چشم ها با گیرندگی عجیبی به آدم نگاه می کردند. خیرگی در آنها مشهود نبود اما پرده های حائل بین صاحب خود و تماشا کننده را میدریدند و مانند پیکان قلب انسان را می خراشیدند. آیا از این چشمها میبایستی در لحظه بعد اشک بریزد یا اینکه خنده‌ی ای تلخی به اما دور لبها خنده‌ای محسوس نبود. آیا چشمها تنگ و کشیده بودند که بخندند و تماشاکاننده‌ای را به زندگی تشویق کنند و یا دلخستگی را بچزانند؟ آیا این چشمها از آن یک زن پرهیزکار از دنیا گذشته بود یا زن کامبخش و کامجویی که دنبال طمه میگشت یا اینکه در آنها همه چیز نهفته بود؟ آیا می‌خواستند خواستن را به دام یا لحله طلب و تمنا می زدند آیا صادق و صمیمی بودند یا موزی و گستاخ عفیف یا وقی آیا بی جلوهگر شده بود یا التماس و التجا اگر التماس می چه می این نگاه این چشم های نیمه خمار و نیمه مست چه داستان ها که نقل نمیکردند؟ همه چیز این صورت عادی بود پیشانی بلند، چانه باریک، گونه های استخانی، زلف های ابریشمی لب های باریک، جمعاً اثر خاصی در بیننده باقی نمی گذاشتند. صورت از آن زنه بسیار زیبایی بود. اما آن چیزی که تماشاچی را مبهود می کرد، زیبایی صورت نبود. معامو و رمز در خود چشم ها بود. چشم ها باریک و موررب بودند. گاهی برعکس تخیل بیننده زنی را جلوگر می ساخت که دارد با این نگاه نقاش را زجر می دهد آن وقت تنفر انسان برانگیخته میشد در صورتی که دوستان و نزدیکان و استاد معتقد بودند که در زندگی او زن هیچ وقت نقشی نداشته است تنها یک زن مدتی مدل نشسته بود و از آن زن نه صورتی در دست است و نه آثار نقاشی شبیه او دیده میشود وقتی او را از تهران تبعید کردن مجرد بود کسی سراغ نداشت که زنی در زندگی او اثری باقی گذاشته باشد سه سال و خورده ای در کلات به سر برد و آنجا مرد. در یکی دو روز اول روزنامه‌ها این حادثه مهم را اصلا قابل توجه ندانستند فقط در روزنامه رسمی دولتی با دو سطر اشاره به مرگ استاد شد. ناگهان همه اش که و از غروب یک ستاره درخشان در افق هنر ایران سخن گفتند. آنهایی که استاد را می شناختند میگفتند به فرض اینکه حادثه مهمی در زندگانی او رخ داده باشد که به تبعید و مرگ او در کلات منتهی گردد. اما استاد این مرد خاموش که جمله‌هایش از دو سه کلمه تجاوز نمیکرد و تا از او سوالی نمیکردند جوابی نمیداد آن هم فقط با آره یا نه آدمی نبود که رازهایی درونیش را به کسی بگوید. آن هم به زن جوانی با چنین چشمهایی. یک نکته مسلم بود، استاد تودار بود و راست پنهان کن. از دستگاه دیکتاتوری هم دل خوشی نداشت. چون در حالی که شاعران دوران هر روز غذرها در متح شاه میگفتند و کاسه ها کسی سراخ ندارد که استاد تصویری از شاه کشیده باشد مریدان استاد از خود می پرسیدن. چرا اسم این پرده را چشمهایش گذاشته؟ ممکن بود اسم آن را چشمها گذاشته باشد اما چشمهایش یعنی چشمهای زنی که استاد به او نظر داشته پس طرف توجه صاحب چشمها بوده نه خود چشمها زیر تابلو روی قاب عکس استاد به خط خود نوشته بود چشمهایش یعنی چشم های زنی که او را خوشبخت کرده یا به روز سیاه نشانده. چشم های زنی که در هر حال در زندگی استاد اثر سنگینی گذاشته و نقاش را برنگیخته است که در قربت هنگامی که زجر ستمگران نامرد را تحمل می کرد به فکر آن زن صاحب چشمها باشد و تصویری ولو خیالی از او بسازد. شکی نیست که این تصویر خیالی است. زیرا هیچ کس طراخ ندارد که استاد در زندگی عادی با چنین صاحب صورتی آشنایی و سرواکاری داشته باشد. شاید هم بتوان تصور کرد که اگر این زن در زندگی خصوصی استاد دخالتی نداشته و نمی‌توانسته دست داشته باشد، حداقل در زندگی اجتماعی او که به تبعید وی در کلات و مرگش منتهی شده است موثر بوده است. کونچکاوان بسیار گشتند که صاحب این تصویر را پیدا کنند. تصویر را شبیه هیچ از زنان دوستان و شاگردانش نیافتند. پیش ماکان چند دختر از خانواده‌های اعیان تهران نقاشی یاد می‌گرفتند. استاد به خانه‌های آنها می‌رفت اما این دختران همه بچه سال بودند و هیچ کدامشان شباهتی به این تصویر نداشتند. علاوه آنها هیچ کدام شایستگی نداشتند که مرد با اراده‌ای چون استاد را از مسیر عادی زندگی بدر اندازند. تا آن حد که در کلات زیر دست مأمورین پلیس با تمام محدودیت‌هایی که از لحاظ وسایل کار نقاشی برای او فراهم ساخته بودند، باز هم به فکر ساختن صورت او بیفتد. اما آن زنی که مدل نشسته بود به کلی ناشناس است کسی او را ندیده استاد در هیچ محفل و در هیچ مجلس عمومی با او خود را نشان نداده تنها آدمی که از وجود این زن ناشناس اطلاع قطعی دارد آقا رجب نوکر نقاش است و او هم چیزی در این خصوص به یاد ندارد و اگر هم میداند چیزی نمیگوید و یا نمی نمیخواهد بگوید به علاوه آقا رجب میگوید که او شباهتی ما بین این تصویر و صورت آن زن ناشناس نمی بیند به چه غص این صورت را ساخته بود؟ آیا به این منظور که از قربت پس از مرگش هدیهی برای منشوقش فرستاده و به این وسیله وفاداری و دلدادگی خود را بروز داده باشد؟ یا اینکه که است به زنی که با چشمایش او را اسیر کرده بود بگوید که من تو را شناختم به طوری که خودت نتوانستی ای خیشتن را بشناسی. شاید هم می خواهد بگوید ای چشما اگر صاحب شما با من بود من تاب می آوردم و کامیاب میشدم. اما استاد چه فهمیده بود؟ چگونه این زن را شناخته بود؟ از این نگاه از این قیافه بی حالت چه استنباط می اینها همه تخیلات است تا آدم نفهمد که از این نگاه و از این حالت چشما چه استنبات می شود؟ چگونه می تواند به این پرسش ها جواب بدهد؟ بیش از ده سال از مرگ استاد میگذرد؟ دستگاه دیکتاتوری واژگون شده. مظاهر مقاومت با استبداد امروز مورد تکریم و احترام مردم هستند. هنوز داستان چشمهای این پرده فراموش نشده. امروز هیچ زنی از طبقه اعیان مخصوصا از آنهایی که به نحوی با یکی از دوستان و کسان و شاگردان و استاد ارتباط کوچکی داشته‌اند، نیست که خود را صاحب این چشمها ها قلمداد نکند. همه خود را معشوق استاد میدانند و همه هر کدام بر حسب خواص اخلاقی و اجتماعی خود مدعی هستند که با او سر و سری داشتند. خانم شکوه و سلطنه که امروز زنی که از سرتیبهای جاندار میریست و این اواخر طلاق او با پنج بچه از شوهرش سر و صدا را انداخته بود در سالهای قبل از تبعید استاد 17 یا 18 سال بیش نداشته است. در یکی از پرده های نقاشی صورت زنی دیده میشد که تا حدی شبیه به صورت خانم شکوه و سلطنه در 17 یا 18 سالگی است. استاد این ربایی خیام را مصور کرده است. این چرخ فلک من و تو. قصدی دارد به جان پاک من و تو. بر سبز نشین پیاله کش دیر نماند تا سبز بروند امد ز خاک من و تو. استاد سبز و سرشاخ درختان و سنگ و خاشاک را به شکل سر و صورت انسان ساخته بود و در یکی از این صورتها آثاری که بیشباهت به یک عکس خانوم شکو و سلطنه در سنین 17 یا 18 سالگی نیست دیده می شود. این را خانوم شکو و سلطنه قرینه می آورد که استاد او را دوست داشته و دلیلش این است که وقتی انگشتر نامزدی را در انگشتش دیده از فرط قیز به حدی دستش را فشار داد که دردش آمد. خانم شکوه سلطنه زندگی پرشر را شوری داشته و روزنامه های فحاش که زمانی و گاهی مخالف شوهرش بودند، این داستان را وقیانه جلفگر ساختند. معهاا زندگی استاد و سلوکش با مردم طبقات مختلف جوری بوده که حتی خانم شکوه هم بیش از این چیزی نمیتواند درباره استاد بگوید. سالهای متوالی پس از شهریور 1320 نقل داستانهای عاشقان از زندگی استاد در روزنامه ها رواش داشت روزنامه نگاران حوادث عجیب از چندطه دروغ پردازی خود بیرون می مخصوصاً مخصوصا داستان فرار سرتیب آرام رئیس شهربانی را روزنامه با شاخ و برکهای هلناک با زندگی و تبعید و مرگ استاد به هم می بافتند و قصه های مخوفی حساب در می آمد. خوشبختانه این قصه ها دیگر ته کشیده و اکنون کم کم دارد فرصت دست می‌دهد که کسی عمیقا درباره زندگی استاد در دوران دیکتاتوری جستجو کند و راز زندگی او را فاش سازد من با بسیاری از زنانی که استاد را می‌شناختند و با او حداقل چندبار بار مواجه شده اند صحبت کردم اگر از قش خودخواهی که در گفته های همه اینها هست چشپوشی کنیم چیز زیادی باقی نمی‌ماند از هر که درباره استاد پرسیدم درباره خودش گفته است تنها آن زن ناشناس استثناست اگر کسی چیزی میداند اوست شاید زن ناشناس هم تخیلات خودش را درباره او نقل میکند به طور کلی آنچه از آنها در این است که استاد ماکان مرد راسداری بوده اغلب قیافه ابوس داشته کم تر شوخی میکرده با آشناهای خود و به خصوص با زنان و شاگردان رو و راست حرف میزده و هیچ توجهی نداشته است به اینکه دیگران از گفته های او خوشنود میشوند یا نه هرگز گفته ای کسی را چه خوب و چه بد برای دیگران نقل نمیکرده. راضی نمی شدهده که در حضور او از دیگران غیبت کنم. کم حرف میزده و اگر صحبتها از چند جمله تجاوز میکرده بیشتر درباره کار خودش بوده از تا درباره امور عادی زندگی. هیچ کس مدعی این نیست که دوست سمیمی استاد بوده. استاد با کسی آمده شد نداشته کمتر ظهر مهمان می شده و در خانه او باز بوده است. هرگز کسی را به ناهار و اصلانه دعوت نمیکرده اما همیشه از مهمانانش، تا آنجایی که وسایل در اختیارش بوده پذیرایی می کرده است بزرگترین نقاش ایران در صد سال اخیر در 44 و چهار سالگی درگذشت و 20 سال تمام مردمی که در آن دوران سرشان به تنشان میرزیده می است او را میشناختند و برایش احترام قائل بودند در آن زمان بسیاری از رجال و اعیان تهران فخر را مباهات میکردند به اینکه یکی از تابلوهای او و یا عقلا کپی را که شاگردان از کار استاد ساخته بودند در خانه داشتند با وجود این هیچ کس او را درست نمی است. هیچ کس به زندگی داخلی استاد وارد نشده بود. استاد آدم آرامی بود و اجازه نمیداد داد که کسی به صندوقچه دل او راه یابد. پستوهای روح او مخازن درد و رنج بود. استاد هرگز میل نداشت مردم بفهمند که چه زجری تحمل می کند. همیشه خوش و دلشاد به نظر می آمد و هیچکس کس نمی توانست قبول کند که در باتن این مرد آراسته و کم مدعا چه شوری در جوش و خروش است. روزی به یکی از شاگردانش که مدتی سبزی او را پاک کرده بود گفته است بدبخت مملکتی که من استاد آن هستم. در شهر کوران یک چشمی شاه است. با وجود این همه آنهایی که سرشان به تنشان می‌ارزید، میکوشیدند برای تزگین خودخواهی خیش با او آشنا شوند. حتی شاه سابق هم نتوانست او را ندیده بگیرد و در اوایل سلطنتش که هنوز دل مردم به دست آوردن را امر زائلی نمیدانست، روزی به مدرسه نوبانیاد نقاش رفت و از آنجا دیدن کرد. موقعی که میخواست سوار شود، دم در با شلاقی که در دست داشت، دو سه مرتبه به چکمه ای راست زد و گفت، کجا یاد گرفته؟ قربان، در فرانسه بوده، بعد هم مدتی در ایتالیا به سر برده. علا حضرت همایونی برگشتند که چند کلمه ای با خود استاد صحبت کنند و ملاحظه فرمودند که نقاش در سرسرای استاده و میخواهد سیگاری آتش بزند. خاطر مبارکشان آزرده شد، رو برگرداندند و به چیچی و سلطنه فرمودن؟ معلوم است که در فرانسه بوده و الا انقدر که بیعدب نمیشد. شیخ علی خانها استاد را مورد اتاب قرار دادند و رندان ترقیبش کردند که بدود و دم اتومبیل خود را به پای اعلیحضرت همایوونی بی بیاندازد و استغفار کند. استاد ابتدا سخت متوهم شد. سیگارش را دور انداخت. چند قدمی از پله‌ها پایین آمد. اما شتابی به خرج نداد. اعلیحضرت همایونی سوار شدند و تشریف بردند. همین حادثه باعث شد که وزارت فرهنگ و وزارت صنایع و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و وزارت اقتصاد ملی و اداره کل هنرهای زیبا هرگز توجهی به این مرکز هنری نکردند. تا آنکه بالاخره کار استاد به کلات کشید و آنجا درگذشت